فصل دوم اکنون به دومین افسانه با عنوان شغال و باغ انگور توجه بفرمایید Thank you. سالها پیش و در روزگاران قدیم در نزدیکی دهی شغالی زندگی میکرد که در مکر و فریبکاری و نیرنگ و هیله سرامد شغالان عالم بود این شغال آنقدر مکار و هیلگر بود که به هر باغ و خانهی دستبرد میزد و از مرداری ها هم می میدازید و, می و می میبرد و میخورد طوری که آن اطراف خانه و باقی نمانده بود که از دست او در امان مانده باشد دل آدمی نبود که از کارهای او خون نشده باشد خرابکاری های این شغال به اینها ختمه نمی‌شد. او هر وقت و هر جا که دوست داشت میرفت و دست به دزدی مرگ و خروسا میزد و از انگورهای تر و تازه باقا هم به قول خودش نوش جان می همین کارها باعث شده بود که روز به روز به غرورش اضافه شود و فکر کند دیگر زیر این آسمان هیچ موجودی جلودار او نیست و هر کاری که دلش بخواهد می تواند بکند خلاصه این بود تا اینکه که آن آبادی پیرمردی صاحب باقی شد او ضعیف و جسه و ناتوان بود برای همین شوال مکار خیلی زود به سراغ باقی او رفت و تا توانست به انگورهای جور واجور باغ او دست زد و آنها را خورد و از بین برد پیرمرد وقتی از راه رسید و آن را دید فهمید که کار کار همان شوال است تصمیم گرفت برای از بین بردن اون فکری کند و نقشهای بکشد با خودش گفت اینطور که پیداست شغال از سراخهای کوچک و بزرگ دیوار باغ می آید تو حالا اگر من همه سراخها را ببندم و در باغ را باز بگذارم اون مجبور است از در باغ بیاید تو آن وقت با یک چوب دستی به حسابش می رسم همین کار را کرد و پشت در باغ به انتظار استاد شب که شد مثل شبهای قبل شغال به سر وقت باغ آمد اما دید همه سوراخ‌های دیوار را گرفتند دوروبر باغ گشتی زد و دید در باغ باز است از آنجا که خیلی هیدگر و مکار و زرنگ بود فهمید کاسه زیر کاسه است کمی دورتر آنقدر ایستاد تا بفهمد چه خبر است دو سه ساعت که گذشت دید هیچ خبری نیست پس آرام آرام به طرف در باغ رفت و داخل شد و پیرمرد سای باغ را دید که در خواب خوشی فرو رفته است یک گلاس رفت به سراغ انگورها و تامری توانست از آنها خورد و مقدار زیادی از آنها را هم به تلافی نقشه پیر مرد حیف و میل کرد و به طرف خانش به اوان پیر صبح که از خواب بیدار شد دید ای دل قافه او خوابش برده و شعال آمده و هر کاری که خواسته انجام داده دوباره نقشه کشید شب که شد یک تکه بزرگ گوشت به در باغ آویزان کرد و با خود گفت حالا دامی به این گوشت وصل میکنم تا به محض اینکه شغال با هم زندان زد بیفتد توی دام با این خیال در باغ را باز گذاشت و رفت به تا راحت بخوابد و صبح بیاید شغال را در دام ببیند شب که شغال به باق آمد دید دوباره وزن به همان منبال است و سوراغها را همچنان بستند و به جای آنها در باغ باز است و یک تکه گوشت بزرگ را آنجا آویزان کردند بلافاصله فهمید که این هم نوعی دام است برای اینکه از شر را او راحت شوند پس بدون اینکه به گوشت دست بزند وارد باغ شد و تا آنجا که میتوانست از انگورها خورد و بعد راهش را کشید و به رفت پیرمرد بیچاره وقتی صبح به سراغ باغش آمد، گوشت را صحی و سالم توی چارچوب در باغ دید و فهمید که شغال به قول معروف دن به تله نداده است. با خودش گفت من نباید اقم نشینی کنم. این بار باید دامی بسازم که شغال حتما توی آن گیر بیفتد وگرنه دار و ندارم را از دست می‌دهم. این بود که تصمیم گرفت در گوشه باغ یک مرغدانی درست کند. همان روز با خشت و چوب یک مردانی درست و حسابی برقرار کرد و جایی را هم برای پنهان شدن خودش ساخت. بعد هم سر راه شغال دو تا دام گذاشت. یکی چاله که روی آن را با خار و خاشاک و برگ پوشان تا شغال داخلش بیفتد و یکی دیگر هم که دست پای شغال توی آن گیر کند و برای همیشه از دزدی و هیلگری پشیمان شود پیرمرد با خودش فکر کرد هر طور که هست باید این شغال به دام بیفتد. او که نمی توانست تا عبد در باغ و چند راه آب و سوراخ را ببندد وقتی کار پیرمرد تمام شد اصل شده بود رفت تا چند ساعتی بخوابد و از خواب سیر شد تا شب خوابش نبرد وقتی شب فرارسید از خواب بیدار شد و چوب دستی بزرگی برداشت به باغش رفت و در آنجایی که برای پنهان شدن خود ساخته بود سنگر گرفت فکر می کنید آن شب چه شد؟ شغال مکار آن شب به باغ نیامد. چون از بس انگور خورده بود مریض شده بود و نمی تواناند سرکت کند. از غذای روزگار پیرمرد چندان از نیامدن شغال ضرر نکرد. چون روبای گرسن ای نزدیکی های صبح گذرش به باغ افتاد و میخواست وارد مرغدانی بشود که ناگان در چال که پیرمرد درست کرده بود افتاد. پیرمرد فکر کرد شغال به دام افتاده به سرعت بلند شد و به طرف چاله رفت تا با گرز به سر شغال بکوبد. اما دید روباه بزرگی به چاله افتاده و دارد خودش را بالا میکشد تا فرار کند. پیرمرد تا به جنبت روباه خودش را بالا کشید و لنگان لنگان فرار کرد. پیره هم چوب دستی اش را به طرف او پرد کرد و چوب دستی به کمر روباه خورد و زوزه او را به آسمان بلند کرد. اما در همان حالی که زوزه میکشید توانست از چنگ پیرمرد مرد بگریزد. روبا در حال فرار با خودش گفت این دام برای من پهن نشده بود چون من برای اولین بار است که این طرف می آیم باید سر درآورم که چه کسی باعث شده تا من این ضربه کاری را بخورم این را با خودش گفت و راه افتاد در آن اطراف جستجویی کند و عامل اصلی این حادثه را بیابد در همین حال به شغال برخورد روبا و شغال پس از احوالپرسی و کمی صحبت از حال و روز همدیگر گفتند و روبا فهمید که آن دام در واقع برای همین شغال در آنجا پهن شده بود پس تصمیم گرفت انتقام سختی از شغال بگیرد شغال گفت اگر بیایی بهلانه من شب تو را به آنجا میبرم آنجا هر چقدر دلت بخواهد میتوانی بخوری روبا خود را به حماقت زد و پرسید چه است؟ شغال گفت باغی است که صاحب بیدست و پایی دارد کلک میزند اما کلک‌هایش ابلهانه و بچگانه است به راحتی می‌توانی از دامهایی که پهن می‌کنند عبور کنی و تا می‌توانی بدزدی و بخوری روبا در حالی که سعی می‌کرد خودش را آرام و سر حال نشان دهد گفت راستش را بخواهی من الان دارم از آنجا می‌آیم توی آن باغ یک مرغدانی هست من به طور اتفاقی سری به آنجا زدم و مرغ و را دیدم باور کن در همه عمرم این همه مرغ و خروس جا ندیده بودم خلاصه سرت را درد نیاورم رفتم به آن دانی و تا می توانستم از آن مرغها خفه کردم و یکی دوتا ایشان را هم خوردم ولی ناراحتم که چرا کسی با من نبود تا بیشتر بتوانیم از آن مرغها بخوریم الان هم دارم میروم رفهایم را با خبر کنم تا بیایند و شکمی از عذا در بیاورند شغال که داشت با دقت به حرفهایی روباه گوش میداد گفت ولی تا جایی که من میدانم در آن باغ مردانه نیست. روبا گفت شاید صاحب باغ به تازگی آن را درست کرده. شغال که کم کم داشت وسوسه میشد برای اینکه از شر روبا خناس و خودش به تنهایی به آنجا برود از روبا خداحافظی کرد و به لانهش رفت. روبا هم در حالی که در دلش برای انتقام از شغال نقشه میکشید از طرف دیگر به راه افتاد. وقتی شب شد شغال که به شدت حوس خوردن مرغ و خروس کرده بود با خودش گفت دیگر دوره انگور خوردن گذشت امشب باید سری به مرگ دانی بزنم آخر چرا آن روبا که مثل من زیرک و باهوش نیست باید این همه مرغ و خروس بخورد ولی من که در هوش و ذکابت سرآمد همه شغال ها هستم نخورم شغال احمد با این فکر و تصمیم را افتاد و به طرف باغ رفت و مثل دفعات گذشته وارد باغ شد از همان دور با چشمهای تیزبینش مرقدانی را دید گفته این روبا بهیادش آمد که میگفت توی اون مرقدانی پر از مرق و خروسه با و ولع فراوان به طرف مرغدانی رفت حتی آنقدر زرنگ بود که توانست از دام و هم بگذرد و خود را به مرغدانی نزدیک کند وقتی پوزش را داخل مرقدانی کرد دید از مرغ و خروس خبری نیست و فهمید که آن روبا فریبش داده است تصمیم گرفت برگردد و از روبا انتقام سختی بگیرد اما در همان لحظه گرز پیرمرد باغبان با شدت هرچه تمامتر بر سرش فرود آمد و نقش زمینش کرد پیرمرد تا آنجا که میتوانست او را زد و شدرش را برای همیشه از سر مردم آن آبادی کم کرد شغال بیشاره یه در حال جان دادن داشت به این فکر می کرد که دست بالای دست بسیار است و کسانی هم هستند که بتوانند او را فریب دهند و نابود کنند